کتاب دختری با پیراهن چوبی و دو افسانه دیگر نویسنده اندرو لنگ ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده مریم موجی این داستان دمپایی سفید یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. روزی روزگاری پادشاهی یک دختر پونزده ساله داشت. اونم چه دختری؟ حتی مادرانی که خودشون دختر داشتن بر این باور بودند که شاهزاده خانم از همه دخترها زیباتر و پدرانی هم که بر حسب تصادف اون رو میدیدن تمام روز رو فقط به صحبت کردن در مورد اون میپرداختند. البته پادشاه بالانسین نام داشت از همون موقعی که دختر کوچولوش رو از آغوش مادر مرحومش بیرون آورد کاملا برده ای اون شد. به راستی که هیچ کس رو در دنیا به غیر از اون دوست نداشت. تا حالا که شاهزاده خانم دیامانتینا به 15 سالگی رسیده بود و از سراسر دنیا ازش خاصگاری کرده بودند. اما تمام خواست کارها از پادشاه پاسخ منفی گرفته بودند. در پشت قصر باغ بزرگی بود که تا پایین تپه ها گسترده شده بود و بیش از یک رودخانه از میان اون میگذشت. هر شب نزدیک غروب شاهزاده خانم با ندیمه هاش به اونجا میومد و گل میچید تا با اونها اتاقاش رو تزیین کنه. اون همیشه با خودش یک قیچی برای بریدن غنچه هاگ و سبدی برای اینکه اونها رو درش بگذاری می آورد تا روز بعد که خورشید طولو می کرد، هیچ چیز ناخوشایندی نبینه. وقتی که کارش به پایان می رسید شاهزاده خانوم در شهر قدم می زد تا مردم نیازمند فرصت صحبت کردن با اون رو پیدا کنند و باهاش درد و دل کنن. بعد پیش پدرش میرفت و دو نفری مشورت میکردند تا بهترین راه کمک کردن به نیازمندان را پیدا کنند حتما شنوندگان این داستان میپرسند که همه اینها چه ربطی به دمپای سفید داره صبر داشته باشید متوجه میشید بانانسین علاوه بر دخترش عاشق شکار هم بود و عادت داشت که هر هفته چند روز به شکار گرازهایی که در کوههای نزدیک شهر زیاد پیدا میشدند بره یک روز که داشت با تمام سرعت از سپه پایین میومد پاش به داخل گودالی فرو رفت و به زمین افتاد و به داخل ای سنگی که پر از خار بود زخم زخمهایی پادشاه زیاد وخیم نبودند اما صورت و دستهاش مجروح شده بودند و خراش برداشته بودند ولی وضع پاهاش بدتر بود چون اون روز به جای کفش های مناسب شکار فقط دمپایی پوشیده بود که بتونه با سرعت بیشتری بدوه. بعد از چند روز پادشاه مثل قبل سلامتی خودش رو به دست آورد و اگر خراشها محف شدند اما یکی از پاهاش که خاری عمیقا در اون فرو رفته بود چر کرده بود و بسیار دردناک بود بهترین طبیبان اون سرزمین تمام مهارت خودشون رو به کار بستند زخم رو شستشو دادند روش زماد مالیدن و پانسمان کردند. اما بیحاصل بود زخم پا فقط بدتر شد و روز به روز متورمتر و دردناکتر بعد از اینکه هرکس هر کس معالجات ویژه خودش رو به کار بست و نتیجهی به دست نیومد خبر رسید که طبیب بسیار ماهری در سرزمینی دیگه زندگی میکنه که بیشتر بیماری های وخیم را درمان کرده. بعد از پرس و جوم مشخص شد که اون هرگز از شهرش خارج نشده و بیمارانش را به حضور خودش میپذیره. اما با وعده دادن مبلغ هنگفتی، پادشاه طبیب ماهر رو وادار کرد که به دربارش سفر کنه. به محض ورود طبیب، اونو فوراً پیش پادشاه بردن و اون معاینه دقیقی از پای پادشاه به عمل آورد. بعد از پایان معاینه گفت افسوس جناب پادشاه درمان این زخم از دست بشر خارجه ولی اگرچه نمیتونم اون رو معالجه کنم حداقل میتونم درد رو از بین ببرم تا بتونید بدون رنج راه برید پادشاه داد زد ای وای اگر بتونی فقط همین کار رو بکنی تا آخر عمر قدردانت خواهم بود دستوراتت رو بده تا اجرا بشه پزشک گفت شما باید به کفاش دربار بگید کفشی از جنس پوست بز خیلی نرم و راحت برای شما درست کنه و من هم روغنی رو که دستور جز جزو اسرار خودم آماده میکنم تا روی کفش مالیده بشه. طبی با گفتن این حرف تعظیم می کرد و پادشا رو که نسبت به قبل شادتر و امیدوارتر شده بود ترک کرد. روزهایی که صرف درست کردن کفش و تهیه روغن شد به کندی بسیاری میگذشت اما صبح روز هشتم طبیب ظاهر شد و کفشی رو که در جعبه قرار داشت همراه خودش آورد. اون کفش رو بیرون آورد و به پای پادشاه کرد. روی پوست بز روغن بسیار سفیدی مالیده بود که به برف دهنکجی میکرد. طبیب گفت وقتی که این کفش رو به پا دارید کوچکترین دردی احساس نخواهید کرد چون روغنی که درون و بیرون اون مالیدم علاوه بر خاصیت درمانی باعث تقویت مادهی که روی اون مالیده شده میشه. طوری که اگه آلی جناب هزار سال هم زندگی کنن، آخر سر بازم این دنپایی مثل روز اول نوه. پادشاه به قدری مشتاق پوشیدن کفش بود که به طبیب فرصت نداشت کلامش رو به پایان برسونه. کفش رو از جعبه در آورد رو پاشو توی اون گذاشت و وقتی که دید میتونه براحتی مثل هر پسر بالغی راه بره و بدوه، عشق شادی به چشمش اومد اون در حالی که هر دو دستش رو به طرف مردی که این اعجاز رو کرده بود دراز میکرد داد زد چه پاداشی میتونم به تو بدم پیش من بمون اونقدر بهت ثروت میبخشم که در خواب هم ندیده باشی اما طبیب گفت چیزی بیشتر از اونچه که تعیین کرده بودن نمیخواد و باید فوراً به کشورش برگرده چون بیماران بسیاری انتظارشون میکشن به همین خاطر شاه بالانسین قانع شد که فقط به این دل خوش کنه که احترامات سلطنتی در مورد طبیب به جا آورده شده و کسی را در طول سفر همراه طبیب به خونش بفرستند. دو سال همه چیز به خوبی و خوشی در دربار گذشت و برای شاه بالانسین و دخترش زمان مثل برق و باد عبور می کرد. جشن تولد پادشاه به آخرین ماه بهار افتاده بود و از اونجایی که هوا بر برعکس معمول خوب بود پادشاه به شاهزاده خانم گفت که هر دوست داره جشن تولد رو برگزار کنه دیامانتینا از قایق سواری روی رودخونه خیلی خوشش میومد و از فرصتی که به دست آورده بود تا مطابق میلش رفتار کنه شاد شد اون تصمیم گرفت مهمانی باشکوهی که نظیر نداشت ترتیب بده و شب که از قایق سواری و قایق رانی خستی می شدن باید برنامه های موسیقی، رقص، بازی و آتش آتشبازی اجرا شد. در آخر جشن پیش از اینکه مردم به خونه هاشون برن باید به همه نیازمندان یک قرص نان و به هر دختری که قرار بود ظرف یک سال آینده عروسی کنه لباس نوعی داده می شد. دیامانتینا برای اومدن اون روز بزرگ لحظه شماری میکرد اما اون روز هم مثل سایر روزها فرارستید قبل از اینکه خورشید کاملا در آسمان بالا بیاد شاهزاده خانم به قدری هیجان زده بود که نتونست تو قصر بمونه و شروع به قدم زدن در خیابونها کرد و چنان سنگهای قیمتی به خودش آویخته بود که برای نگاه کردن به اون باید دستها سایبان چش میشد. کم کم صدای شیپور بلند شد و شاهزاده خانم به طرف خونه رفت. چند لحظه بعد در کنار پدرش مسیر رودخونه رو در پیش گرفتند. قایق با در اونجا انتظارشون رو کشید و اونها از داخل قایق انواع مسابقات شنا و شیرجه را تماشا کردند. بعد از پایان مسابقات قایق به سمت بالای رودخونه که محل برگزاری کنسرت بود رفت و بعد از اینکه جایزه برندگان داده شد و شاهزاده خانم های نان و لباس ها را توضیح کرد، اونها با مهمانانشون ودا کردند و به طرف قایقی که قرار بود اونها را به قصد برگردونه رفتن. بعد اتفاق بدی روی داد، همانطور که پادشاه سوار قایق میشد، یک لحظه لنگی از دمپای سفید که گشاد شده بود به میخی که بیرون اومده بود گرفت و موجب لغزیدن پادشاه شد. درد شدید بود، و پادشاه ناخداگاه چرخید و پاشو تکون داد تا ها رو از میخ آزاد کنه و در یک لحظه کفش قیمتی به داخل رودخونه افتاد این اتفاقات چنان به سرعت روی داد که هیچ کس حتی شاهزاده خانم متوجه اون نشد و فریاد پادشاه شاهزاده خانم رو بلافاصله پیش اون کشوند شاهزاده خانم پرسید پدر عزیز چی شده اما پادشاه نمیتونست بهش بگه فقط در حالی که نفسش بند اومده بود گفت کفشم کفشم در همین موقع ملوانان گرد پادشاه ایستاده بودند و بهش زل زده بودند و فکر میکردند که یک دفعه عقلش رو از دست داده بیامانتینا وقتی که دید چشمای پدرش به رودخونه دوخته شده حراسان به اون طرف نگاه کرد اونجا روی جریان آب نقطه سفیدی بود که هرچی بیشتر نگاه کردن دور و دورتر میشد. پادشاه دیگه نمیتونست اون رو ببینه و از طرفی داروی شفابخشی که توی کفش بود و درد پاش رو برطرف کرده بود هم دیگه وجود نداشت اون فریادی کشید پاش لغزید و از کنار قایق به داخل آب افتاد در یک لحظه رودخونه پر از افرادی شد که با تمام قوا به سمت پادشاه که با جریان سریع آب دور شده بود شنا می‌کردند. بلاخره شناگری که از بقیه قوی تر بود لباس پادشاه رو گرفت و اون رو به طرف ساحل برد و هزاران دست مشتاق منتظر بودن اون را از آب بیرون بگشن. پادشاه رو که بیهوش بود به کنار دخترش بردن که اون هم از وحشت ناپدید شدن پدرش در زیر آب ضعف کرده بود. هر دوی اونها رو در کالسکهی گذاشتن و به قصری که بهترین طبیبان شهر انتظار ورودشون رو میکشیدند بردن. بعد از چند ساعت شاهزاده خانم حالش جا اومد و مثل قبل تندرست شد. اما درد، خیست شدن و ترس از حادثه همگی به شدت روی پادشاه تاثیر گذاشت و اون سه روز در آتش تب سوخت. در این فاصله، دخترش که تقریبا از شدت غصه حال خودشون نمیفهمید دستور جستجوی گسترده برای پیدا کردن دمپایی سفید رو داد، این دستور اجرا شد اما حتی ماهرترین شناگرانم نتونستن ردی از اون در کف رودخونه پیدا کنند. وقتی مشخص شد که دمپایی همراه جریان آب به دریا کشیده شده دیامانتینا فکر دیگه ای کرد و پیک هایی رو به جستجوی طبیبی که درد پدرش رو تسکین داده بود فرستاد و خواهش کرد که هر چه زودتر دمپایی دیگه ای رو به جای دمپایی مفقود شده درست کنه اما پیک ها با خبر غمانگیزی برگشتند اینکه طبیب چند هفته قبل فوت کرده و از همه بدتر اینکه رازش رو هم با خودش برده. این خبر با توجه به ضعف پادشاه چنان تاثیر روی اون گذاشت که طبیبان ترسیدند به شدت قبل بیمار بشه، اون لب به غذا نمیزد، تمام طول شب ناله میکرد. بخشی از نالهاش به خاطر درد بود و بخشی دیگه به خاطر حماقتی که به خرج داده بود و از طبیب نخواسته بود چند دنپایی سفید دیگه هم براش درست کنه تا در صورت وقوع حادثه همیشه دمپایی یدکی داشته باشه. برحال کم کم وقتی دید گری و فایده ای نداره دستور داد که با جد و جهد بیشتری دنبال گنج گم شدهش بگردن. ساحل رودخونه اون روزها چه سحنهی داشت به نظر می رسید که همه مردم کشور اونجا جمع شدند اما جستجوی دوم هم مثل اولی بیحاصل بود. بالاخره پادشاه اعلامی صادر کرد که هر کسی دنپایی گمشده را پیدا کنه وارث تاج و تخت میشه و با شاهزاده خانم عروسی خواهد کرد. بسیاری از دختران به این برخورد اعتراض کردند و با شنیدن کاری که پادشاه انجام داده بود دل دیامانتینا فرو ریخت. با این حال اونقدر پدرش رو دوست داشت که آرامش اون از هر چیز دیگه توی دنیا براش مهمتر بود و خاطر چیزی نگفت و فقط سری فرود آورد. البته نتیجه اعلامی این بود که سواحل رودخانه تر از قبل شد چون تمام خاصگاران شاهزاده خانم از سرزمین های دور به اون محل اومدن و هر یک امید داشتند که یابنده خوشبخت دمپایی باشن بارها سنگ براقی رو که در کف رودخونه بود جایی دمپایی گرفتن و هر شب گروهی از مردان که آب از سر و روشون می چکید راه خونه رو در پیش می گرفتن. اما یک جوان همیشه بیشتر از دیگران اونجا درنگ میکرد و حتی شب هنگام با وجود اینکه لباسهاش به بدنش چسبیده بود و دندوناش از سرما به هم میخورد به جست جوش ادامه میداد یک روز که پادشاه روی بسترش دراز کشیده بود و از شدت درد به خودش بیبییچید صدای دعوای افرادی رو از اتاق کفشکن شنید. اون زنگ طلایی رو که در کنارش بود به صدا درآورد و یکی از خدمتکارهاش رو صدا زد. وقتی پادشاه پرسید موضوع از چه قراره، خدمتکار جواب داد: "سرورم، عامل سر و صدایی که شنیدید مرد جوانی بود که با گستاخی اینجا آمده بود تا اندازه پای علا حضرت رو بگیره تا دمپایی ای به جای دمپایی گمشده برای شما درست کنه." پادشاه گفت: "شما با این مرد چه کردید؟" مرد جواب داد، اون رو از خص بیرون انداختن و چند ضربه هم بهش زدن تا ادبش کنن. پادشاه در حالی که چهره در هم کشیده بود گفت، پس کار بسیار بدی کردند. اون از روی مهربانی اینجا اومده بود و دلیل برای بدرفتاری با اون وجود نداشت. خدمتکار گفت سرورم اون گستاخ بود که میخواست وجود مقدس پادشاه رو لمس کنه. این پسر بی ارزه که شاید شاگرد کفاش بود حتی اگر میتونست بهترین کفش ها رو هم درست کنه بدون زماد شفابخش بیفایده بود. پادشاه چند لحظه خاموش موند. بعد گفت مهم نیست. برید و جوان رو پیش من بیارید. من با کمال میل هر نوع درمانی رو که از دردم کم کنه امتحان میکنم. به این ترتیب لحظه ای بعد پسر جوان رو که چندان از قصر دور نشده بود پیدا کردند و به حضور پادشاه بردند. اون رشید و زیبارو بود و اگر چه ادام می کرد که کفاشه اما رفتاری مناسب و متواضع داشت. اون تعظیم می کرد و از پادشاه خواهش کرد بهش اجازه بده پاش رو اندازه بگیره و به علاوه بگذاره که اون زماد شفابخشی روی زخم قرار بده. بالانسین از ظاهر و کلام مرد جوان خوشش اومده بود و با خودش فکر کرد که ظاهرا این مرد میدونه چه کاری داری میکنه. به همین خاطر پای دردناکش رو دراز کرد و جوان با دقت بسیار اون رو معاینه کرد و سپس زماد رو به آرومی روی اون گذاشت. در مدت زمان کوتاهی زماد اثر کرد و درد شدید رو تسکین داد. و پادشاه که هر لحظه اعتمادش بیشتر میشد از مرد جوان خواهش کرد تا اسمش رو بهش بگه. جوان با فروتنی جواب داد، آلی جناب، من یتیم هستم. پدر و مادرم وقتی که شش ساله بودم از دنیا رفتن. در شهر همه منو گیرگیریلیو می نامند. چون در کودکی با وجود تمام بدبختی ها مرتب آواز می خوندم. خوشبختی من فقط داشتن رویه شاده. پادشا پرسید، واقعا فکر می کنی بتونی منو درمان کنی؟ گیرگیریلو جواب داد، کاملا سرورم. پادشا گفت، فکر می کنی چقدر طول بکشه؟ جوان جواب داد. کار آسونی نیست اما تلاش کنم درمان رو در تگ دو هفته تمام کنم. پادشاه فکر کرد که دو هفته برای درست کردن یک دمپایی زمان طولانیه اما فقط گفت آیا برای کارت به چیزی احتیاج داری؟ گیرگیری رو پاسخ داد: اگه شما مرحمتی به من کنید، فقط یک اسب خوب میخوام. این جواب به قدری غیرمنتظره بود که درباریان به سختی جلوی خندشون رو گرفتن و پادشاه در سکوت به جوان خیره شد و بالاخره گفت: خواستت انجام میشه. من منتظر بازگشت تو در دو هفته آینده هستم. اگر به قول خودت وفا کنی، پاداشی رو که میدونی بهت تعلق میگیره. در غیر این صورت میگم که تو رو به خاطر گستاخی تازیانه بزنن. جوان تعظیمی کرد، روش و چرخون تا قصر رو ترک کنه و تمسخور بر ایشخندهای دیگر رو نادیده گرفت. چون اون چیزی رو که میخواست به دست آورده بود. اون در مقابل دروازه قصر منتظر مون تا اینکه اسب با رو براش آوردند و اون با مهارت زیادی که ملازمان پادشاه رو متعجب کرد روی زمین جهید و در میان تمسخور مردمی که با شنیدن پیشنهاد وقیهانه اون اونجا جمع شده بودند به سرعت از شهر خارج شد حالا اون رو به حال خودش می‌گذاریم و براتون میگیم که اون کیه قبل از رسیدن پسرک به سن شش سالگی پدر و مادرش درگذشتند و اون سالهای زیادی رو با عموش که به مطالعه کیمیاگریمی پرداخت زندگی کرد نمی نمیتونه ثروتی رو برای برادرزادش باقی بگذاره چون خودش پسری داشت اما هرچی رو که میدونست بهش یاد داد بعد از مرگ اون گیرگیری رو در دفتری استخدام شد و روزانه چند ساعت در اونجا کار میکرد در اوقات فراغت به جای بازی کردن با بقیه پسرا ساعتها به مطالعه کتابا می پرداخت و از اون که خجالتی بود و داشت تنها باشه همه فکر می قدری هم دیوان است. بنابراین وقتی که این خبر همه جا پیچید که اون قول پادشاه پادشاه رو درمان کنه و به جایی که کسی از اون اطلاعی نداشت رفته موج خنده و تمسخور شهر رو فرا گرفت و همه شروع به مسخره مسخرا و ریشخندش کردند. اما اگر اونها از افکار گیرگیریو خبر داشتند، اون رو دیوانه تر از سابق فرض می کردن. واقعیت این بود که یک روز صبح پیش از جشن روی رودخانه وقتی شاهزاده خانم در خیابانهای شهر قدم میزد، گیرگریو گیرگیریو اون رو از پنجری اتاقش دید و بهش علاقمند شد. البته اون کاملا نامید بود. این تصور احمقانه بود که برادرزادی یک کیمیاگر با دختر پادشاه ازدواج کنه، به همین دلیل اون نهایت سعی خودش رو کرد تا شاهزاده خانم رو فراموش کنه و بیشتر از سابق به مطالعه پرداخت تا اینکه اعلامی سلطنتی یک دفعه اون رو امیدوار کرد در زمان فراقت دیگه لحظه های ارزشمند رو صرف مطالعه کتاب ها نمی کرد بلکه مثل بقیه مردم در امتداد ساحل رودخانه پرسه می زد یا بعد از مشاهده برق زدن جسمی در آب زلال به داخل جویبار میپرید اما خیلی زود میفهمید که اون شی سنگریزه سفید یا خوردهشیش ای بوده. عاقبت فهمید که با پرسه زدن و جستجو کردن در دخونه شاهزاده خانم رو به دست نمیاره و برای آرامش دوباره به کتابهاش روی آورد و بیش از پیش به مطالعه پرداخت. زربون مسئله قدیمی میگه گر صبر کنی زقور حلوا سازی. همه ی انسان ها راه صبر کردن رو نمیدونن و بعضی اونها رو به کمک تجربه به دست میارند اما او یکی از کسانی بود که به جای اینکه به خاطر عدم توانایی در رسیدن به اونچه که نهایت آرزوش بود زندگیشو نابود کنه کوشش کرد خودش رو در سایر زمین ها سرگرم کنه. به این ترتیب یک روز که اصلا انتظارش رو نداشت پاداش خودش رو گرفت. بر حسب اتفاق در حال خوندن یک کتاب قدیمی چند صد ساله بود که درمان همه انواع بیماری ها در اون ذکر شده بود. اون میدونست که بیشتر اونها رو پیرزنانی اختراک کرده بودند که میخواستن خودشون رو باهوشتر از دیگران نشون بدن اما سرانجام به موضوعی رسید که باعث شد صاف بشینه و چشم‌هاش بدرخشن. این مطلب دستور زمادی بود که هر نوز زخم یا کورکی رو درمان می‌کرد و از گیاهی به دست میومد که فقط در کشوری بسیار دور پیدا میشد که رسیدن به اونجا و برگشتن با پای پیاده دو ماه طول میکشید اگرچه به گفته کتاب این زماد هر 12 زخمی رو درمان می کرد اما در چند مورد بی اثر بود و نشانه های از این موارد در کتاب ذکر شده بود به همین دلیل گیرگیریو درخواست کرده بود تا قبل از معالجه پای پادشاه رو ببینه و برای جلب رضایت اونها ادعا کرده بود که کفاشه های ناامید کننده توی پای پادشاه وجود نداشت و قلبش از شادی اینکه شاهزاده خانم به اون تعلق داره لرزید شاید اینطور بود اما هنوز خیلی کارها باید انجام میشد و اون زمان بسیار کوتاهی رو برای انجام اون برای خودش تعیین کرده بود اون فقط تا جایی که لازم بود به اسب خودش فشار می‌آورد. با این حال شش روز طول کشید تا به محلی که گیاه در اونجا می‌روید برسه جنگل انبوهی پیش روش قرار داشت در حالی که افسار اسب رو محکم به درختی میبست چهار دست و پا روی زمین نشست و شروع به جستجوی اون گیاه کرد چند بار تصور کرد که اون رو پیدا کرده و بعد معلوم شد که گیاه ای بوده اما عاقبت وقتی که داشت می میشد و اون تقریبا امیدش رو از دست داده بود به بستر گسترده از این گیاه رسید که درست در زیر پاش قرار داشت در حالی که از شدت شادی میلرزید تا جایی که میتونست از این گیاه چید و در کیفش جا داد بعد سوار اسبش شد و چهار نعل به سمت شهر تاخت وقتی که از دروازه ها گذشت شب بود و پانزده روز مهلتی که گرفته بود روز بعد به پایان می رسید. چشمش از خواب سنگین بود و بدنش از کشیدگی زیاد درد میکرد اما بدون اینکه استراحتی بکنه آتشی توی اجاق فراهم کرد ظرفی رو از آب پر کرد گیاه رو درون ریخت و گذاشت که بجوشه. بعد از اون دراز کشید و به خواب عمیقی فرو رفت. وقتی که بیدار شد خورشید بالا اومده بود. اون از جاش جهید و به سمت ظرف دوید. گیاه ناپدید شده بود و همانطور که توی کتاب اومده بود شیری قلیزی جای اون رو گرفته بود. اون شیره رو با قاشقی از ظرف خارج کرد و در معرض آفتاب قرار داد تا قدری خشک بشه. بعد اون رو در یک بطری بلوری کچی ریخت. بعد خودش رو شست و بهترین لباس هاش رو پوشید و در حالی که بطری رو در جیبش گذاشته بود راه قصر رو در پیش گرفت. بعد از رسیدن به اونجا خواهش کرد بدون معطلی به حضور پادشاه برسه. بالانسین که پاش از وقتی که گیرگیریو اون رو بازدومات پیچیده بود کمتر درد میکرد برای بازگشت مرد جوان روز شماری میکرد و وقتی که خبر اومدن جوان رو شنید دستور داد اون رو فورا به نزدش ببرند. به محض ورود اون پادشاه مشتاقان از روی بالشاه بلند شد اما وقتی اثری از دمپایی ندید چهرش درهم شد. در حالی که با ناامیدی هاش رو تکون میداد گفت: "پس موفق نشدی؟" جوان جواب داد: "امیدوارم که شده باشم، علی جناب. فکر می کنم این اینچنینه." او بطری رو از جیبش بیرون آورد و دو سه قطره از شیره رو روی زخم ریخت و گفت: "این کار رو سه شب تکرار کنید. خواهید دید که معالجه شدید." پیش از اینکه پادشاه بتونه ازش تشکر کنه، تعظیم کرد و از قصر خارج شد. خبرها خیلی زود در شهر پیچید و مردان و زنان مدام گیرگیری رو شیاد میخوندند و پیشگویی میکردند که بعد از سرود روز اگر سرش بالای دار نره دستکم زندانی میشه اما جوان توجهی به این حرفهای بیرهمانه نکرد و پادشاه هم که تصمیم گرفته بود با دست خودش مرهم شفابخش رو بر روی زخمش بگذاره اهمیتی به این حرفها نداد صبح روز چهارم پادشاه از خواب بیدار شد و بلافاصله پای مجروحش را دراز کرد تا درستی یا نادرستی معالجه جوان رو بفهمه در اون طرف زخم کاملا خوب شده بود اما از این طرف چطور بله این طرف هم درمان شده بود حتی اثری هم باقی نمونده بود که جای زخم رو نشون بده آیا هیچ پادشاهی با دیدن چنین معالجه به اندازه بالانسین خوشحال میشد اون به چابکی آهو از بسترش بیرون پرید و روی پاشنه پاش ایستاد و انواع ها رو در تا مطمئن بشه که پاش واقعا خوب شده. وقتی که کاملا از این کار خسته شد، دخترش رو خبر کرد و به درباریان گفت که مرد جوان خوشبخت رو پیشش بیارن. شاهزاده خانم در حالی که آهی از سر آسودگی می کشید که به جای پیر مردی ترسناک این جوان پدرش رو معالجه کرده، با خودش گفت که واقعا جوان و زیباست. وقتی که پادشاه برای درباریان شوش درمانی خارق العاده مرد جوان را شهر میداد دیامانتینا به خودش فکر کرد که اگر گیرگیلو در لباسای معمولیش اینقدر خوب به نظر میرسه در جامعه باشکوه وارث پادشاه چقدر خواهد درخشید. با این حال، آرامش خودش را حفظ کرد و فقط با سرخوشی به تماشای درباریان پرداخت که میدونستند چاره‌ای جز ادای احترام و فرمانبرداری نسبت به پسر کیمیاگر ندارند. بعد لباس با از مخمل سبز رنگ که با طلا حاشیه دوزی شده بود و کلاهی که سه پر سفید در اون قرار داشت برای گیرگیری و آوردن. آوردند با مشاهده ظاهر بسیار آراسته اون شاهزاده خانم بلافاصله بهش علاقمند شد هشت روز بعد جشن عروسی برگزار شد و در مجلس عروسی هیچ کس به اندازی پادشاه رقص و پایکوبی نکرد قصه ما به سر رسید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 همه و همه و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صوتی سانین مهران دوستی،